لیرازل دشتهایی که میشناسیم را به یاد میآورد. هنگامی که جنها به سوی شرق میرفتند تا به شیوه های انسانها بخندند، بر زانوی پدرش که آرام و جدی بر روی تخت مهی و یخیش نشسته بود و دوازده سال زمینی بر آن نجنبیده بود جابجا جا شد. آه کشید و آهش بر کوهستان های رویایی انداخت و سرزمین پریان را، اندکی آزرد و سپید دمها و غروبها و شفق و درخشش آبی روشن ستارگان که با یکدیگر دیگر آمیختند تا برای ابد روشنی بخش سرزمین پریان باشند گذر دریغی را حس کردند و پرتوهایشان لرزیدند زیرا جادویی که این روشنایی را فرا گرفته و تلسمی که آنها را به هم پیوسته نگاه می‌داشت تا همواره سرزمینی را روشن کنند که هرگز پیرو زمانی نیست نیرومندتر از دریغی تیره برخواسته از خلق سلطنتی شاخ دخت راسته جادوان نبود لیرازل آه کشید چون یادی از زمین از میان رضایت دراز مدت او و از فراز آرامش سرزمین پریان گذشته بود بنابراین در اوج شکوه سرزمین پریان که ترانه هم به سختی می تواند از آن بیان کند به یاد پام چالها و بسیاری از گیاهان کوچک دشتهایی که میشناسیم افتاد و در حالی که در پندار دران دشتها گام می زد، اوریون را به دور مانده از خود در آن سوی مرز شفق دید چون چندین سال گذشته است شکوهمندی های جادوی سرزمین پریان و زیبایی ماورای رویای ما و آرامش ژرفی که اعثار بیآزار و شتاب زمان در آن خفته بودند و هنر پدرش که کوچکترین زنبقها را از پژمردن باز می داشت و تلسمهایی که با آن اشتیاقها و رؤیاها را راستی میبخشید. دیگر خیالش را نه از پرواز باز می داشت و نه راضیاش میکرد. بنابراین آهش بر سرزمین جادویی وزید و گلها را اندکی آزرد و پدرش دریغ او را حس کرد و دانست این دریغ گلها را آزرده و دانست که این دریغ آرامش گسترده بر سرزمین پریان را لرزانده است. هرچند نه بیشتر از پرنده ای گم شده و سرگردان در شبی تابستانی که با بال زدن در برابر چینهای پرده ای شاهانه آن را می لرزاند. و چند این را هم میدانست که دریق دخترش برای زمین است و همچنان که با او بر روی تختی که تنها در ترانه ها می توان از آن گفت نشسته است شیره ای خاکی را به اوج شکوه سرزمین پریان ترجیح می دهد اما حتی این هم چیزی را جز دلسوزی در قلب جادویش نجنباند همان گونه که ممکن است دل ما برای کودکی بسوزد که در معبدی مقدس برای چیزی بی اهمیت آه می کشد و هرچه فکر می کرد زمین و زود آمدن و زود رفتن پشمردگی بیاور زمان و آن ظاهر ناپایدار که از سواحل سرزمین پریان دیده می شود و برای آن ذهن دقیق و آراست به جادو بسیار حقیر بود در نظرش کمتر ارزش افسوس خوردن را می یافت. و هرچه زمین در نظرش بی ارزشتر می شد. بیشتر برای فرزندش و حوث حرزگردش که با شتاب از اینجا آواره شده بود و افسوس به دام چیزهای فانی افتاده بود دل می سوزاند. آه خب دخترش راضی نبود هیچ خشمی نسبت به زمین حس نمی کرد که تخیل دخترش را روبوده بوده بود دخترش از شکوه ذاتی سرزمین پریان راضی نبود برای چیزی بیشتر آه می کشید هنره شگرفش باید آن را به او میداد، بنابر بنابراین بازوی راستش را از جایی که لمیده بود از بخشی از تخت رمزامیز ساخته شده از آهنگ و وهمش برداشت بازوی راستش را بالا برد و سکوتی سرزمین پریان را فرا گرفت مرگ های عظیم در جرف های سبز جنگل ها از زمزم بازی استادند پرندگان و حیوله های ای همچون شکلی حکاکی شده بر مرمر خاموش شدند و جنهای قهوهی که به سوی زمین می همه ناگهان در نجوای سکوت بر جای ماندند سپس از میان این سکوت زمزمه اشتیاق برخاست. نواهای کوچکی در تمنای چیزی که هیچ ترانهی نمی تواند بگوید نواهایی همچون صدای عشق که اگر هر قطره نمکین می زندگی کند و صدایی برای سوگواری به او داده میشد سپس تمامی این زمزمه‌های کوچک سمیمانه و رقصان به ترانه ای پیوسته تبدیل شدند که فرمان روای سرزمین پریان با دست جادویش فراخوانده بود. و این ترانه از سپیده گفت که در دور دستها در روی زمین یا سیارهای دیگر که سرزمین پریان نمی شناخت بر فراز لجنزارهای بیکران برمیدمید. آهسته از درون تاریکی ژرف و نور ستارگان و سرمایه تلخ سر بر بیرمق، لرزان و ناشاد به زحمت بر ستارگان غلبه می کرد. با سایه های تندر نهفته می شد و تمامی موجودات سیاه به آن نفرت می ورزیدند، تاب می آورد و می و می درخشید، تا آندم که از میان تیرگی لجنزارها و سرمایه هوا در دمی پرعظمت شکوه رنگها فرا می رسید و سپیده بر فراز این پیروزی گام بر داشت و تیره ترین در دریایی از یاس بنفش آهسته به سرخی و صورتی می گراییدند و سیاه ترین سخره که از شب پاسداری کرده بودند اینک با درخششی زرین میتابیدند. و هنگامی که ترانه اش بیش از این نتوانست از این شگفتی بگوید که همواره برای قلم پریان ناشناخته بود دستش را همچنان که بالا گرفته بود تکان داد و سپیده ای را به سرزمین پریان فرا خاند. از یکی از نزدیکترین ترین سیارگان خورشید فرایش خواند و سپیده هرچند از ماورای سرحد جغرافیا و از درون دورانی گم شده و ماورای بینش تاریخ آمده بود شاداب و دلفروز بر فراز سرزمین پریان درخشید که پیش از آن هیچ سپیدهی ندیده بود و در آن سپیده جاله های سرزمین پریان آویخته از نکهای های خمیده سبزه ها پدید آمدند و همچون دشت های ما کره های کوچکشان آنچکوه تابناک و شگفتنگیز آسمان ها را تا این سپیده ای را که دیده بودند درخشاندند و سپیده آهسته و غریبانه بران دشتهای ناآموخته گسترد و رنگهایی را برانان فرو بارید که نرگسهای زرد و گل سرخهای وحشی ما هر روز و هر هفته در یک فصل در دیدارهای شهوتانگیزشان در سکوتی تلخ می نوشند و درخششی که برای جنگل تازه بود بر برک های شگفت بلند ظاهر شد و سایه‌های ناشناخته برای سرزمین پریان از تنه های عظیم درختها بیرون خزیدند و بر سبززارهایی گستردند که رؤیای ظهور آنها را ندیده بودند و برج های قصر که شگفتی را البته با زیبایی که کمتر از زیبایی خودشان میدیدند دانستند که این بیگانه جادویی است و در پاسخ درخششی بر پنجره های مقدسشان جلوگر گر کردند که همچون الهامی بر زمین های سرزمین پریان درخشید و برقی از سرخی را با آبی کوهای سرزمین پریان آمیخت و دیدبانان کوهستانی نخستین سرخی شرم آسمان را به هنگام آمدن دیدند. دیدبانان اعثار متمادی از فراز کمرگاه ها نظاره کرده بودند تا مبادا از زمین یا سیاره دیگری بیگانه ای به سرزمین پریان بیاید. با دیدن سرخی شیپورهاشان را بلند کردند و آمدن غریبهای ای را حشدار دادند. و پاسداران درهای وحشی شیپورهاشان را که از شاخ گاوهای افسانه ای ساخته شده بود بلند کردند و در تاریکی سراشیبهای خوفناکشان همین هشدار را تنین انداختند و پجواک این هشدار را از سطح مرمرین سنگها برای تمامی همکاران وحشیشان تکرار کرد پس سرزمین پریان این هشدار را تنین انداز شد که چیزی غریبه کرانه را آزرده است سپیده گسترده و زرین بر این سرزمین منتظر و نگران فرود آمد بر سرزمینی که در کمرگاه شمشیرهای جادوین از غلافهای تیره دهندگان بیرون کشیده و بالا گرفته شده بود و کاخ با تمامی شگفتی و افسونها و جادوهایش از میان پرتوهای آبی یخیش شکوهی از خوش آمد یا همچشمی را تاباند و به سرزمین پریان شکوهی افزود که تنها ترانه ها می توانند بگویند آنگاه بود که شاه پریان باز دستش را تکان داد و از کنار قندیل های بلورین تاجش بالاتر برد و در میان دیوارهای کاخ راهی گشود و شاه بی پایان قلم را به لیرازل نشان داد و تا زمانی که انگشتش جادو می کرد، دیرازل با جادو جنگل های سبز تیره و تمامی زمین های وحشی سرزمین پریان را دید و کوه های موقر آبی روشن و دره را که مردمی وحشی از آنها پاسداری می کردند و تمامی موجودات افثانه ای را که در تیرگی برک های عظیم می خزیدند و جن های را که به سوی زمین می جهیدند، دید که دیدبانان شیپورهایشان را به سوی لبهاشان بردند و نوری بر شیپورها درخشید که سربلندترین پیروزی هنر نهانی پدرش بود نور سپیده‌ای که از فضاهای ماورای اندیشه فراخوانده بود تا دخترش را خوشنود کند و هوس‌هایش را فرو بنشاند و رؤیاهایش را از زمین تداعی کند سبززارها را دید که زمان صده ها بر فرازش پرسه زده حتی یک شکوفه از گلهای هاشیه را نپژمرده بود و روشنائی نوینی را دید که بر سبززارهایی که دوست داشت می و زیبایی به آنان می‌داد که تا آغاز این سفر بیمرز سپیده برای دیدار با شفق جادویی نشناخته بودند و در تمام این مدت برجهای کاخ که تنها ترانه نمی‌تواند از آنها بگوید، می‌درخشیدند و می‌تابیدند و چشمک می‌زدند. شاه پریان چشمایش را از این زیبایی انگیز برگرداند و به چهره دخترش نگریست تا شگفتی را ببیند که با بازگشت رؤیاهایش از دشتهای پیری و مرگ با آن به خانه شکوهمندش خوش آمد می گفت. و هرچند چشم های لیرازل کوهای سرزمین پریان را می نگریست که رمز و راز و آبیش به گونه شگفتی با هم همخانی داشتند شاه پریان که به خاطر همین چشم ها سپیده را از دورده از و از مسیر طبیعیش فراخوانده بود در جرفای جادوین این چشم ها اندیشه زمین را دید اندیشه زمین هرچند دستش را بلند کرده بود و با تمام نیرویش علامتی رازگونه داده بود تا شگفتی را به سرزمین پریان بیاورد که دخترش را از بودن در خانه خوشنود کند. به خاطر همین سر تا سر قلم راش به بجد آمده بود و دیده بر فراز کمرگاه های خوفناک، هشدارهای غریب داده بودند و حیوله ها و حشره ها و پرندگان و گل ها از این لذت تازه شاداب شده بودند، و در مرکز سرزمین پریان دخترش به زمین میاندیشید هر شگفتی دیگری جز سپیده به او نشان داده بود ممکن بود رؤیاهایش را به خانه باز خواند اما با آوردن این زیبایی شگرف به سرزمین پریان و آمیختن آن با شگفتی های کهنش خاطرات آمدن سپیددم را بر دشت هایی که نمیشه ناخت در درو بیدار کرد و لیرازل در خیال یک بار دیگر در دشت که گل غیرجادویی زمینی در میان سبزههای زمینی میرویدند با اوریون بازی میکرد. با صدای غریب سرشار از جادویش گفت آیا این کافی نیست؟ و با انگشتهایش هایش شگفتی را فرا به سرزمین های اشاره کرد. لیرازل آه کشید این کافی نبود. و دریق به سراغ شاه جادوین آمد، تنها دخترش را داشت و دخترش برای زمین آه میکشید. زمانی ملکه وجود داشت که همراه با او بر سرزمین پریان فرمان روایی میکرد. اما او میرا بود و برای همین مرده بود، چون اغلب به دشتهای زمین میرفت تا دوباره بهار را ببیند یا جنگل های آلش را به هنگام پاییز ببیند. و هر چند تنها یک روز در دشتهایی که می میماند می ماند و پیش از غروب آفتاب به کاخ ماورای شفق باز میگشت، اما هر بار می زمان او را پیدا میکرد و و بنابراین فرسوده شد و کمی بعد در سرزمین پریان جان سپرد چون تنها یک میرا بود و پریان شگفت زده او را همانند دختران انسانها به خاک سپرده بودند و اکنون شاه با دخترش تنها بود و دخترش برای زمین آه کشیده بود دریغ فرایش گرفته بود اما از میان همان تیرگی که آن دریغ را برانگیخته بود الهامی درخشان با خنده و لذت ترانه بر میخواست درست همانند انسانها پس ایستاد و هر دو دستش را بالا برد و الهامش با موسیقی بر سرزمین پریان فروریخت و با هر جزر و مد آهنگ همچون نیروی دریا ای برای برانگیختن رقصی پدید آمد که هیچ کس در سرزمین پریان نمی توانست در برابرش ایستایی کند با جدیت دستهایش را تکان داد و موسیقی از آنها جریان میافت و هر آنچه در جنگل ریشه داشت و هر آنچه بر برگ ها میخزید هران در میان پرتگاه های بلند میپرید یا بر جریب های زنبق میچرید همه چیز در همه جا دیدبانان تنهای کوهستانی و جنهایی که به سوی زمین می همه با آهنگی سروده شده از روح بهار فرارسیده بر بامدادی زمینی در میان گله های بز میرقصیدند و جنها اکنون بسیار به مرز نزدیک شده بودند هنوز نرسیده چهرههایشان به خنده بر شیوه های انسان شکفته بود در اشتیاق چیزهای کوچک و بی اهمیت، به سوی شفقی که بین سرزمین پریان و زمین لمیده است میشتافتند اکنون دیگر به جلو نمی رفتند بلکه در دایره ها و مار پیچ های پیچ در پیچی می و همچون رقص پشه ها در غروب های تابستانی بر فراز دشت هایی که میشناسیم می رقصیدند و حیولاهای محیب افسانهای ای در جرفای جنگل های پوشیده از سرقص رقصی را اجرا می کردند که جادوگران زمانها پیش در جوانیشان پیش از به دنیا آمدن شهرها از حوث و خندههاشان ساخته بودند و درختان جنگل ریشه را به سنگینی از خاک بیرون آوردند و به گونه ناهنجاری آنها تاب خوردند و سپس بر چنگال های حیولاگونهشان رقصیدند و هشره ها بر روی برگ های در پیچ و تاب عظیمشان رقصیدند و در تاریکی غارهای دراز موجودات شرور در انزبای جادویی از خواب بلندشان برخاستند و در رطوبت غار رقصیدند. و در کنار شاه خردمند شاهدخت لیرازل با درخششی ضعیف تا بنده از لبخندی نهفته ایستاده بود و به نرمی با وزنی که همه چیزهای جادویی را برقص آورده بود تاب میخورد. چون او به نیروی زیبایی شگرفش همواره نهفته لبخند میزد. و در لحظه ای ناگهانی شاه پریان یک دستش را بالاتر برد و نگاه داشت و آن رقص را در سرزمین پریان باز ایستاند و با حیبتی ناگهانی همه موجودات را میخکوب کرد و آهنگی سراسر ساخته شده از نواهای به دست آمده از الهامهای سرگردانی که در آبهای ناب ماورای کرانه‌های زمینی ما می‌خوانند و پرسه می زنند بر سرزمین پریان فرو فرستاد و سر تا سر سرزمین در جرفای جادویی آن موسیقی شگفت فرو رفت و موجودات وحشی که زمین وجودشان را حد زده بود و موجوداتی که حتی از افسانه‌ها پنهان ماندند، آغاز به خواندن ترانه‌های کوهنی کردند که از یاد برده بودند و موجودات افسانهای آسمان از بلندی ها به پایین فرا شدند و احساس های ناشناخته آرامش سرزمین پریان را برهم زد جریان موسیقی با امواج شگفتانگیز بر سراشیب های کوه های آبی سرزمین پریان می تپید تا آنکه که پرتگاه هایشان های غریب پرتنینی زمزمه کردند بر روی زمین هیچ صدایی از موسیقی یا پژواک شنیده نمیشد هیچ صوتی، هیچ صدایی هیچ زمزم از مرز باری که شفق نگذشت اما این اسوات به جاهای دیگر صعود کردند و همچون حشرههای غریب نادر از سراسر دشتهای بهشت گذشتند و همچون خاطراتی بینشان پیرامون ارواح رستگاران هم همه کردند و فرشتگان آن موسیقی را شنیدند اما رشک بردن بر بران بر آنها ممنوع شده بود و هر چند این ترانه به زمین نیامد و هرچند دشتهای ما هرگز موسیقی سرزمین پریان را نشنیده است و نیز اگرچه حتی خونیاگران زمینی که برای سوگواری یا شادی ما ترانه می‌خوانند هم هیچ نوایی از سرزمین پریان نشنیدند که اگر میشنیدند دیگر هرگز ترانه نمیخواندند اما همچنان که در هر عصری فقط یک بار چنین میشود تا مباد و ناامیدی مردم زمین را فراگیرد خونیاگران رقص آن اسوات را در اندیشه هاشان حس کردند و آنها را بر سازهای زمینی نواختند پیش از آن هرگز موسیقی سرزمین پریان را نشنیده بودیم و از آن پس نیز نشنیدیم. شاه پریان برای مدتی همه موجوداتی را که از او پیروی می کردند و تمامی تمناها و شگفتیها و ترسها و رؤیاهایشان را رؤیاگونه در جزر و مد موسیقی رقصان نگاه داشت که نه از نوایی زمینی که از ماده مبهمی که سیارگان در آن شناورند، و شگفتی دیگری که تنها جادو میشناسد ساخته شده بود و سپس همچنان که سراسر سرزمین پریان موسیقی را مینوشید، نوشید گونه که زمین ما باران ملایم را مینوشد، دوباره با نگاهی که می گفت کدام سرزمین به زیبایی سرزمین ماست رو به دخترش کرد ولی رازل به سوی او برگشت تا بگوید اینجا برای همیشه خانه من است لبهایش از هم جدا شده بودند تا چونین بگویند و عشق در آبی چشمهای های پریانهاش میدرخشید، داشت دستهای زیبایش را به سوی پدرش دراز میکرد که ناگهان صدای شیپور شکارگر خسته ای را شنیدند که با فرسودگی در کنار مرز زمین مینواخت سفر به دنیای پر رمز وراض افسانه ها.